عطار میگه هران کو قافل از حق یک زمان است یه لحظه خدا را بذاری کنار هران کو قافل از حق یک زمان است در اندم کافر است اما نهان است در واقع همون یه دم چی شده؟ کافر شده گرچه پنهانه ظاهرا داره تسبیح هم دستش ذکر میگه ولی تو این ذکر خدا تو نظرش نیست در این قرآن خوندن خدا نظرش نیست در این نماز خوندن خدا نظرش نیست ویلون للمسلیم در اون دم کافر است اما نهان است اگر اون قافلی پیوسته بودی در اسلام بره وی بسته بودی یا به رویش بسته بودی اگر این قفلت تداوم بیابه دیگه امکانی که مسلمون بشه نیست